مصنوی معنوی مولوی برنامه 26 ششم دفتر دوم، مدت این مسنوی تأخیر شد مهلت باییست تا خون شیر شد تا نزاید بخت نو فرزند نو خون نگردد شیر شیرین خوش شنو چون زیا الحق حسام الدین انان بازگردانید زوج آسمان چون به میراج حقایق رفته بود بی بهارش ها نشگفته بود چون ز دریا سوی ساحل بازگشت چنگ شعر مصنوی باسازگشت مصنوی که سیقل ارواح بود بازگشتش روز استفتاح بود مطلع تاریخ این سودا و سود سالا در 662 بود بلبل از اینجا برفت و بازگشت بحر سید این معانی بازگشت ساعد شه مسکن این باز باد تا ابد بر خلق این در باز باد آفت این در هوا و شهوت است ورنه اینجا شربتن در شربت است این دهان بربند تا بینی ایان چشم بند آن جهان حلق و دهان ای دهان تو خود دهانه دوزخی و ای جهان تو بر مثال برزخی نور باقی پهلوی دنیای دون شیر صافی پهلوی جوهای خون چون درو گام زنی به احتیاط شیر تو خون می شود از اختلاط یک قدم زد آدمان در زوق نفس شد فراق صدر جنت توق نفس همچو دیو از وی فرشته می گریخت بهر نان چند آب چشم ریخت گرچه یک مو بد گنه کو جسته بود لیکان مو در دو دیده رسته بود بود آدم دیده نور قدیم موی در دیده بود کوه عظیم گردران آدم بکردی مشورت در پشیمانی نگفتی معذرت زان که با عقل چو عقل جفت شد مانع بدفعلی و بد گفت شد نفس با نفس دگر چون یار شد عقل جزوی عاطل و بیکار شد چون ز تنهایی تو نومی شوی زیر سایه یار خرشی شوی رو بجو یار خدایی را تو زود چون چنان کردی خدا یار تو بود آن که در خلوت نظر بردخت است آخران را هم زیار آموخته است خلوت از اغیار باید نی زیار پوستین بهر دیامد نی بهار عقل با عقل دگر دتا شود نور افزون گشت و ره پیدا شود نفس با نفس دگر خندان شود ظلمت افزون گشت و ره پنهان شود یار چشم توست ای مرد شکار از خس و خاشاک او را پاک دار هین به جاروب زبان گرده مکن چشم را از خس رهاورده مکن چون که مؤمن آینه مؤمن بود روی او زالودگی ایمن بود یار آینه است جان را در حزن، در رخ آینه ای جان دم مزن تا نپوشد روی خود را در دمت دم فرو خردن بباید هر دمت کمز خاکی چون که خاکی یار یافت از بهار صد هزار انوار یافت آن درخت کوشوت با یار جفت از هوای خوش ز سر تا پا شکفت در خزان چون دید او یار خلاف، در کشید و رو و سر زیر لحاف. گفت یار بد بلا آشفتن است، چون که او آمد طریقم خفتن است. پس بخسبم باشم از اصحاب کف، بهز دقیانوس باشد خواب کف. یقزشان مصروف دقیانوس بود، خوابشان سرمایه ناموس بود، خواب بیداری است چون با دانش است، وای بیداری که با نادان نشست، چونکه که زاغان خیمه بر بهمن زدند، بلبلان پنهان شدند و تن زدند، زن که بیگلزار بلبل خاموش است، غیبت خورشید بیداری کش است آفتاب ترک این گلشن کنی تا که تحت الارض را روشن کنی آفتاب معرفت را نقل نیست مشرق او غیر جان و عقل نیست خاص خورشید کمال است. روز و شب کردار او روشنگری است مطلع شمسای گر اسکندری، بعد از آن هر جاروی نیک و فری، بعد از آن هر جاروی مشرق شود، شرق ها بر مغربت عاشق شود. حس خفاشد سوی مغرب دوان، حس از سوی مشرق روان، راه حس، راه خران است ای سوار، ای خران را تو مزاحم شرم دار پنج حس هست جز این پنج حس آن چو زر سرخ و این حس ها چو مس اندر آن بازار که ایشان ماهرند حس مس را چون حس زر کیخرند حس ابدان قوت ظلمت می خورد. حس جان از آفتابی می چرد ای ببرده رخت حسها سوی غیب دست چون موسی برون آور ز ای سفاتت آفتاب معرفت و آفتاب چرخ بند یک صفت گاه خورشید و گاه دریا شوی گاه کوه قاف و گاه انقا شوی تو نه این باشی نه آن در ذات خویش ای فزون از وهم ها و از بیش بیش روح با علم است و با عقل است یار روح را با تازی و ترکی چکار از تو ای بین با چندین سور هم مشبه هم موهد خیرسر گه مشبه را موهد می کند گه موهد را سور ره می گه تو را گوید زمستی بلحسن یا سغیر از سن یا رد بل بدن. گاه نقش خیش ویران ایران می کند. آن پای تنزیه جانان می کند. چشم حس را هست مذهب اعتزال. دیده اقل است سنی در وسال. سخره حسند اهل اعتزال. خیش را سنی نمایند از زلال هر که در حس ماند او معتزلیست گرچه گوید سنیم از جاهلیست هر که بیرون شد زهس سنی ویاست. اهل بینش چشم اقل است. گر بدیدی حس حیوان شاه را پس بدیدی گاوخر الله را گر نبودی حس دیگر مرترا جز حس حیوان ز بیرون هوا پس بنی آدم مکرم کی بودی کی به حس مشترک محرم شدی نامصور یا مصور گفتند باطل آمد بیز صورت رستند نامصور یا مصور پیش اوست کو همه مغز است و بیرون شد ز پوست گر تو کوری نیست بر اعما حرج ورنه رو که صبر و مفتاح الفرج پرده های دیده را داروی صبر هم بسوزد هم بسازد شرح صدر آینه دل چون شود صافی و پاک نقش ها بینی برون از آب خاک هم ببینی نقش و هم نقاش را فرش دولت را و هم فراش را چون خلیل آمد خیال یار من صورتش بد معنی او بد شکن شکری از را که چون او شد پدید در خیالش جان خیال خود بدید خاک درگاهت دلم را می فریفت خاک بر بروی کوزه خاکت می شکیفت گفت خوبم پذیرمین این از او ورنه خود خندید بر من زشت رو چاران باشد که خود را بنگرم ورنه او خندت مرا من کی خرم او جمیل است و محبون للجمال کی جوان نو گزیند بیرزال خوب خوبی را کند جذبین بدان طیبات و طیبین بر وی بخان در جهان هر چیز چیزی جذب کرد گرم گرمی را کشید و سرد سرد قسم باطل باطلان را می کشند باقیان از باقیان هم سرخوشند ناریان مر ناریان را جازبند، نوریان مر نوریان را طالبند. چشم چون بستی تو را جان است، چشم را از نور روزن صبر نیست. چشم چون بستی تو را تاسه گرفت، نور چشم از نور روزن که شکف. تاسه تو جذب نور چشم بود، تا بپیوندت به نور روز زود. چشم بازر تاسه گیرد مرطورا، دان که چشم دل ببستی برگشا آن تقاضای دو چشم دل شناس، کو همی جویت زیای بی قیاس، چون فراق آن دو نور بی سبات تا سا آوردد گشادی چشمهاد پس فراق آن دو نور پایدار تا سم آرد آن را پاس دار او چو می خاند مرا من بنگرم لایق جذبم و یا بد پی کرم. گر لطیف زشت را در پی کند تسخری باشد که او بروی کند کی ببینم روی خود را ای عجب تا چه رنگم همچو روزم یا چو شب نقش جان خیش من جستم بسه هیچ می ننمود نقشم از کسی گفتم آخر آینه از بهره چیست تا بداند هر کسی کو چیست و کیست آینه آهن برای پوست هاست آینه سیمای جان سنگین بهاست آینه جان نیست الا روی یار روی آن یاری که باشد زاندیار گفتم ای دل آینه کلی به رو به دریا کار بر نهایت به جو زین طلب بنده به کوی تو رسید درد مریم را به خرمابون کشید دیده تو چون دلم را دیده شد این دل نادیده غرق دیده شد آینه کلی تو را دیدم ابد دیدم من در چشم تو من نقش خط گفتم آخر خیش را من یافتم در دو چشمش راه روشن یافتم گفت وهمم کن خیال توست هن ذات خود را از خیال خود بدان نقش من از چشم تو آواز داد که منم تو تو منی در اتحاد کن در این چشم منیر بیزوال از حقایق راه که یابد خیال در دو چشم غیر من تو نقش خد گر ببینی آن خیال دان و رد زان که سرمه نیستی در میکشد، کشد باده از تصویر شیطان می چشد چشمشان خانه خیال است و عدم نیست را هست بیند لا جرم چشم من چون سرمه دید از زلجلال خانه هستی است نی خانه خیال تا یکی مو باشد از تو پیش چشم در خیالت گوهر باشد چو یشم یشم را آنگه شناسی از گوهر کس خیال خود کنی کلی عبر یک حکایت بشنو ای گوهر شناس تا بدانی تو آیان را از قیاس حلال پنداشتن آن شخص خیال را در عهد عمر ماه روزه گشت در عهد عمر بر سر کوه دویدند آن نفر تا هلال روزه را گیرند فال آن یکی گفت ای عمر اینک هلال چون عمر بر آسمان مه را ندید گفت کین مه از خیال تو دمید ورنه من بیناترم افلاک را چون نمی بینم هلال پاک را گفت ترک کن دست و بر ابرو بمال آنگهان تو برنگر سوی حلال چونکه او ترک کرد ابرو مه ندید گفت ای نیست ماه، شد ناپدید گفت آره موی ابرو شد کمان سوی تو افغان تیره از گمان چون یکی مو کچ شد او را راه زد، تا به دعوا لاف دید ماه زد. موی کچ چون پرده گردون بود، چون همه اجزاد کچ شد چون بود. راست کن اجزات را از راستان، سر مکش ای راست راو زن آستان. هم ترازو را ترازو راست کرد، هم ترازو را ترازو کاست کرد. هر که با ناراستان همسنگ شد، در کمی افتاد و عقلش دنگ شد. رو اشداء و الکفار باش، خاک بر دلداری اغیار پاش، بر سر اغیار چون شمشیر باش هین مکن رو باه بازی شیر باش تازه غیرت از تویاران یاران نکسلند زان که آن خاران ادوی این گلند آتش اندر زن با گرگان چون سپند زان که آن گرگان ادوی یوسفاند جان بابا گویدت ابلیس هین تا بدم بفری بدت دیو لعین این چونین طلبیس با بابا بابات کرد آدمی را این سیه رخ مات کرد بر سر شطرنج چوست است این غراب، تو مبین بازی با چشم نیم خواب زان که فرزین بند ها داند بسه که بگیرد در گلویت چون خسه. در گلو ماند خسه او سالها. آن خس؟ مهر جاه و مالها. مال خس باشد چو هستی بی سبات در گلویت مانه آب حیات. گر برد مالت عدوی پرفنه را برده باشد رهزنه. دوزدیدن مارگیر ماری را از مارگیر دیگر. دوزدک از مارگیر مار برد. زبلهی آن را غنیمت می شمارد وارهیدان مارگیر از زخم مار مار کشتان دزد او را زار زار مارگیرش دید پس بشناختش گفت از جان مار من پرداختش در دعا می خواستی جانم از او کش بیابم مار بستانم از او شکر حق را کان دعا مردود شد، من زیان پنداشتم، آن سود شد. بس دعاها کن زیان است و حلاک و از کرم می نشنود یزدان پاک. التماس کردن همراه عیسی علیه السلام زنده کردن استخانها ها را از او گشت با عیسی یکی ابله رفیق استخوان ها دید در حفره عمیق گفت ای همراه آن نام سنی که بدان تو مرده را زنده کنی مرمه را آموز تا احسان کنم استخوانها را بدان باجان کنم گفت خاموش کن که آن کار تو نیست لایق انفاس و گفتار تو نیست کن نفس خواهد زباران پاکتر و فرشته در روش در راکتر عمرها باییست تا دم پاک شد تا امین مغزن افلاک شد خود گرفتی این اصا در دست راست دست را دستان موسی از کجاست گفت اگر من نیستم اصرار خان هم تو برخان نام را بر استخان گفت ایسا یارب این اسرار چیست؟ میل این عبله در این بیگار چیست؟ چون غم خود نیست این بیمار را چون غم جان نیست این مردار را مرده خود را رها کرده است او مردای بیگانه را جوید رفو گفت حق ادبارگر ادبارجوست خار رویده جزای کشت اوست آنکه تخم خار کارت در جهان هان هان او را مجو در گل ستان گر گیرد ب کف خار شود بر سوی یاره رود ماره شود شیمیای زهر و مار است آن شقی برخلاف شیمیای متقی. درس کردن صوفی خادم را در تیمارداشت بهیمه و لاحول خادم. صوفی می گشت در دور افق تا شب در خانقاه شد قنوق یک بحیمه داشت در آخر ببست. او به صدر صفه با یاران نشست. پس مراقب گشت با یاران خیش، دفتر باشد حضور یار بیش. دفتر صوفی سواد حرف نیست. جز دل اسپید همچون برف نیست. زاد دانشمند آثار قلم، زاد صوفی چیست؟ آثار قدم همچو سیاد سوی اشکار شد گام آهو دید و بر آثار شد چند گاهش گام آهو در خور است بعد از آن خود ناف آهو رهبر است چون که شکر گام کرد و ره برید لاجرم زنگام در کامی رسید. رفتن یک منزل بر بوی ناف، بهتر از صد منزل گام و تواف. آن دلی که مطلع مهتاب هاست، بهر آرف فتحت ابواب هاست. با تو دیوار است و با ایشان در است. با تو سنگ و با عزیزان گوهر است آنچه تو در آینه بینی ایان پیر اندر خشت بیند بیش از آن پیر ایشانند که این عالم نبود جان ایشان بود در دریای جود پیش از این تن عمرها بگذاشتند. پیشتر از کشت بر برداشتند پیشتر از نقش جان پذرفتند پیشتر از بر درها سوفتند. برنامه های مصنوی معنوی مولوی را مینوکتاش و شهباز ایرچ تحییه با اجرا کردان